این تاریخ تبری نقل می کند در وقایه سال شست و دوی هجری قمری. تو این کتاب آوردم مدارک شما هست نگاه کنید می گه که وقتی که امام حسین سال شستیه که هجری شهید شد در کربلا در مدینه هم امام حسین قبل از حرکت به سوی کربلا یزید و قبول نداشت هم عبدالله ابن زوویر عبدالله پسر همون زبیر معروف عبدالله ابن زبیر خیلی دلش برای دین لک نزده بود، حکومت میخواست، رضا با یزید حاضر نبود بیعت کنه وقتی امام حسین شهید شد خوشحال شد گو اولا رقیب از سر رام رفت، بعدم یزید تضعیف میشه، بالاخره من رو کار میام اومد رفت مکه و مردم رو جمع کرد تبری مینویسه یه سخنرانی کرد در مسجد الحرام گفت مردم مکه با من بیعت کنید میخوام برم با یزید بجنگم خاص از شهادت امام حسینم سوء استفاده کنه یزیدی که امام حسینم کشته چنین کرده باید بریم اینا رو میگفت بعد این تبری میگه در ضمن سخنرانیش وقایع سال 62 هجری قمری گفت اگر کسی با من بیعت نکند خونه آتش میزنم میگه یکی پای منبر پا شد گفت جناب عبدالله ابن زبیر مگه برای بیعت نکردن میشه خونه آتش زد تبری میگه عبدالله ابن زبیر تو سخنرانیش سال 62 هجری قمری در مکه گفت مگه قبلی ها این کار نکردند نکردن؟ ما سؤال میکنیم. آی مسلمونا تبری مبرخ معروف اهل سنته. سال 62 هجری عبدالله ابن زبیر به مردم مکه میگه مگه قبلی آتش نزدن. قبل از 62 هجری در تاریخ اسلام غیر از صحبت حمله به خانه علی و برای بیعت آتش زدن کجا داریم؟ دیگه تاریخ آشکار نخواسته بگه اینجوری باید از تو تاریخ رو در بیاری